فرداد می چه کار کنی؟ برنامه داری؟ بله فردا بعد از ظهر می خواهم به مسجد بروم بعد از ظهر در مسجد چه خبر است؟ آن موقع که وقت نماز نیست برای مراسم ختم پدر دوستم به مسجد می روم پدر دوستم سه روز قبل از دنیا رفت. خدا رحمتش کند. پس برای مراسم ختم به مسجد می روی؟ بله. روزهای سوم، هفتم و چهلم برای افراد فوت شده مراسم سوگواری داریم. در مسجد در مسجد یا در خانه فرق نمی کند که کجا مراسم بگیریم؟ در مراسم سوگواری چه کار می کنید؟ مردم در مسجد قرآن می خوانند و به صحبتهای سخنران مذهبی گوش می کنند. آیا لباس مشکی هم می پوشید؟ درست است؟ بله. لباس مشکی می پوشیم و با نزدیکان فرد فوت شده همدردی می کنیم.